ای رفت به چوگان غذا هم چو چپ میخورد و راست بر او هیچ مگو کان کس که تو را پگند اندر تک و پو او داند او داند او داند او در دیده تنگ مور نور است از تو در پای ضعیف پشه زور است از تو ذات تو سزاست مر خدا بندی را هر بست که ناسزاست دور است از تو گر با خردی تو هرس را بنده مشو در پای تمع خار و سرپ گنده مشو، چون آتش تیز باش، چون آب روان، چون خاک به هر باد پراینده مشو شو. از هر چه به جزمه است، کوتاهی به، می همز کفه بطان خرگاهی به، مستی و قلندری و گمراهی به، یک جرعه میز ماه تا ماهی به.